بر سرغ عربستان خب عربستان و یمن خب توی آخر زمان واقعا نقش ویژه دارن چون ما از یمن سید یمانی رو داریم که از شهر صنع خروج میکنه الان این بابا میگه من تو بستررم مثلا همین دوستانی. به زور دارم ما دو تا یمانی داریم. اینا فتننس حواات جمع باشه. یکی دیگه خود منطقه اجازه و مکه که ظهور آقا صاحب و زمان از همون بسیار اهمیته یعنی سه تا مسجد شما داشته باشیم مسجد کوفه. مسجد الحرام مسجد الاقصى این سه مسجد دعوا سه نقطه استراتژیک زوره. ببینید مسجد الاقصا یهود گرفت مسجد حرام و وهابی سلفیا گرفتن مسجد کوفه سلیبیا گرفتن صلیب سهیون سلفی این برنامه غرب چه جوری بود گفتن یهود میره اونجا مستقر میشه نمی تون دست بیفته عراق هم که عراق می... امریکا بهد میگیره جنگ های صلیبی به عنوان جنگ های صیبی اومدن و اینا صلیبی های هستن سی های سیهوس وننجلیستن جالبه. صلففیان که مسلمان های سحیون میگن اسرائیل باشه وشاراست نباشه. کلیپاش هست و می آشاران تخم چشم من جا داره طرف میگه. خب حالا نوکش ببین چی شد جریان برگشت. کوف افته دست درسته. اوزا در عربستان بسیار نافرم و شکننده است. اوزای اسرائیل هم بعد از بیداری اسلامی و با این گردش قدرتی که در سوریه داره انجام میشه و با این حزب الله جدیدی که در سوریه شکل گرفته، قوات الشبیحه داره میچرخه. یعنی برنامه‌ای ریختن که نصف سال 2000 به بعد این سه منطقه کامل دستشون بیفته. دقیقاً از 2000 به بعد هر سه منطقه دست میدن. خب این اون لطف این نتیجه استقامت و مقاومته اصلا بی مقاومت نمیشه به ظهور رسید خب برخی از آقای نمیشه واقعا یه حرفایی میزدن شرماور میگفتن آقا ما تو روایت زهور داریم در آخر زمان تو منطقه شامات نورد قرقیسی ها شکل میگیره این است بین دشمنان شیعه بایستن نگاه کنن این دعوایی بین سلفی ها و علبی ها علوی ها چون جز غلاتن شیعه محسوب نمیشن، سلفی‌ها هم که دیگه ناسبی مشخصن اینا بیافتن با هم دیگه بجنگن شیعه واسه پس ما نباید به بشار اسد کمک کن ببینید بررسی قراره این فرق، این فرد این فردی که این و زده خب متأسفانه تاثیرات دینی هم داره خب هم داشته تو کشور خودمون آدم واقعا شرم‌آوره حالا ما نمی‌دونیم چیه چون با افراد کار نداریم این خط فکریه باید حلش بکنه نه خیر ظهور اگه بخواد صورت بیاید تو مقاومت، تو اگه مقاومت خالی بکنی، امام زمان همید پشت ضرور خالی میکنی. پس آماده زهر نشده پس نمیگم. آقا نخو خدا رو نمیفرست. اما عربستان عربستان اوزه بسیار بسیار شکننده داره. ببین یه از 1900 که پادشاهی سعودی شکل میگیره، مثل تاریخار نوشتم اشتباه نکنم جزیره رو کاغذ بخونم. پادشاه مطلق عربستان شکل میگیره. الان اینا همینطور پشت سر هم میان من این آخریار کار دارم بعد از عبدالعزیز ابن عبدالرحمن ابن فیصل که 1953 به حکومت میرسه بعد از او طبق قانونی که اینا نوشتن پسرای عبدالعزیز میتونن حاکم بشن پادشا بشن این کسی دیگه اجای دیگه نمیتونه بیاد 1964 سعود ابن عبدالعزیز میاد 1975 فیصل ابن عبدال ملک فیصل معروف بود 1982 خالد ابن عبدالعزیز میاد 2005 فهد ابن عبدالعزیز میمیره یعنی از این میخوام اینه تا 1982 فهد تا 2005 و الان عبدالله ابن عبدالعزیز اینا همشون شما خدمت شما از میخوانم فرزندان عبدالعزیز هم خود این عبدالعزیز 17 تا 22 تا زن براش نفت شده چون بیش از 4 تا زن نمیتونه داشته باشن اینا هیم میگرفتن در واقع این خانوها بچه دار میشدن اینا ری طلاق میدادن بچه‌هایی که برای نقل کردن واقعا عجیبه حالا من اون اون به قول حد اکثری که گفتم میگن این فرد براش تا پونزده تا دختر نقل شده و 150 تا پسر یعنی یک شجره ملعونه ای درست کرده این ملعون اینها شبکه حکومتی فرزندان محمد ابن عبد الوهاب شن میگن به اینا میگن آل سود به اونا آل شیخ همین عبد آل شیخ خب اینا مثلا از فرزندان اینا خدمت شما میکنم می‌کنم های دینی به وجود میارن به نفع اهل سعود مثلا ما شبکه اصلاح که مال از... مثلا اهل سنت عربستانه میگه با ما آزادی نداریم. این مینا استاد دانشگاه تو زندانه گفتم بخوام آزاد بشیم شبکه الاسلام آمده بود یه کار قشنگی انجام داد با همین نرم افزار ساده گوگل ارث اومد ساحل دریای سرخ رو بررسی کرد گفت این شاهزاده ببین چیلاد استخرا اینا زمینای گلف اینا که با شیرین آباداده میشه آب شیرین کنه که با نفت کار میکنن آب شیرین میکنه چار هزار تا هفت هزار تا شاهزده دارن که چهار هزار تا شما این اینا یک میلیون دلار حقوق میره تمام هواپیما رفت آمد تمام برای اینا رایگانه خب شما یه طلال اینا ببینید چه اون هواپیما قفس پرندهی خرید تو اینترنت انترنت ببینید چیه بخشی داشت کف این هواپیما متحرک بود که این توی هواپیما مثلا نماز میخواد بخونه این همینجوری به سمت قبله میچرخید هم دستور دادم مثلا این چه جور دینی اینی که دیگه بره از مال نزول و مال مردم بره خونه بسازاده بزنه هازمن فضل ربی اینه بنی ای که نماز میخونن اینه این همون یعنی یک اوضاع مردم عربستان واقعا دیگه سختشونه من بحث زن و حقوق زن و مطرح کردن رو خدمت شما عرض کنم هیچ اینا همه پول اول میره سب پادشاه پادشاه ها که می بخش یک بخشیش رو به تولمالي تقسیم کن به نمرده این از اوزه سیاسی اینو از اون طرف الان خود همین عبدالله ن عبداللهین هشتاد و نه سالشه تبع قانون هم این بوده اگر هر برادر مرد بعد ازو برادر بزرگتر سر بیاد همینم هم ناب شد یعنی بعد از ملک بن سلطان که به درک واصل شد ولی اهدا خیلی جالبه تا الان دو تا از ولی این مرده. از کوچیک‌تر بودن به لحاظ سنی، دو تاشون مردن. 89 نه نزدیک 90 سالشه. بیماری جدی داره، در هیچ شکی وجود نداره. آخرین خبرها هم اینه که اصلا دو تا مرگ بالینی شد و زندگی بالینی شد و مرگ مغزی شد و قلب و کلیه و اینا کار افتاده دارن با تنفس با دستگاه به قولی زندگی گردش داشتن. بعد از سلطان باید عبدالرحمن خلیفه میشد یا حاکم میشد بعد او طلال بعدش ترکی. اما اینا هم نقص کردند. به خاطر اون را که دارن یعنی همینا باعث شدن فرزندان طلال ترکی و عبدالرحمن اینا معترض باشن تو همین چند ماه گذشته ما دو مرگ دو تا شاهزاده عربستانی رو داشتیم رو میکشن اینا گزینه‌هایی ام دعواس این اینها حالا این بخش رو ما روایت هم داریم بله خب که تو آخر در آخر زمان در حجاز یک خاندانی میاد آل لفظ آل استفاده میکنه یعنی اینا سلطنتی هن. خیلی جالبه یه فرد از اینها به حکومت میرسه که نام حیوان داره بعد شما احساس میکنی چشم این چپ انحراف داره وقتی از نزدیک می‌بینی این نه. واقعا فهد همچین ویژگی داشت توی چشمش انحراف داشت بعد بعد از او این اینکه نام حیوان داره خواه فهد به عربی میشه پلنگ مادر فارسیش برادرش به حکومت رسید که نام عبدالله داره خوب بعدش هم برادرش به حکومت رسید من فرزندان عبدالعزیزم خوب نام عبدالله هرچند سه بار خبر من یه عبدالله من سه بار موجز ظهور بهش میدم وضرابات دیگه داریم که در آخر بعد از این مرگ آخریه دیگه اینا با هیچ کس سر هیچ کس اجماع نمی کردن و حکومت های چند روزه و چند ماه تشکیل می خب این تحلیل روزنامه فیگارو هم هست فیگارو ایتالیفی که ما رو 2006 تحلیل که اگر ملک عبدالله بمیره اون 1 سال بود و موقت از شاه شده بود 2005 فهد مرده بود اگر این بمیره سر هیچ کس اجماعی نیست الان همین الان ولی ولیعهدش سلمان آلزایمر داره ملک سلمان و تازه همونجا غیر از این دعوا دعوه دیگه هم دارن دعوا بین صدیری ها و غیر صدیری ها حسه صدیری یا صدیری یکی از زنای عبدالعزیز بود اینا تا پسر داشت اینا مروش شدن به عشیره سبعه خب که این یکی فهد سلطانه فهد اومد سلطان نایب بود یعنی ولی احد بود که مرد نایف که این هم مرد عبدالرحمن به قدرت نرسی، ترکیه به قدرت نرسی، سلمان الان ولی عهد احمد هم که خب این هفته بهشون میگن آله فهد هم بهشون میگن خب اینا صدیری، اینا خودشون رو نابتر میدونن چون تنیان، بقیه فرزندان ناتنی از فرزندان الان مثلا بن سلطان صدیریه یا صدیریه این چیگاه میکنه خودشو لايق میدونه و بنده اعتقاد دارم گزینه امریکایی هم همین فرد این سفیر بود در امریکا الان امنیتی عربستان بسیار از فتنه‌ای که داره توی سوریه انجام میشه توسط این فرد داره ترریزی میشه یعنی با همکاری امریکایا در سکوت محض خبری هم است یه خبر ما فقط داشتیم که یه بمبگذاری شده احتمالا این کشته شده که این خبرم تایید نشد و نفسش و دیده شد این فرد و ام این کارو کردن می‌خواستن بازخورد بسنجن ببینن چیکار دارن میکنن اوزه بسیار بسیار شکننده داره یعنی همین الان اگر ملک عبدالله بمیره نا سلمان آدمی نیست بتونه امپراتوری بچرخونه خب و بعد او بالاخره این پسرای فهد چی میشن پسر عبدالعزیز یا برادرای فهد تمام میشن حالا دعوا یافته به نسل سومی ها هایی کی باشن بچه های خدمت شما عرض می‌کنم فیصل میگن خدمت شما عرض میگن ما بچه سعود بن عبدالعزیز میام ما باش چون بابا اون اولی بود بچه های عبدالله بن میگه ما باشیم چون همین الان ما پدرمو خدمت شما پادشا بود. بچه های فهد میگن نخیر ما باشیم برای اینکه ما شاه معروفی بود یعنی این د... بعد اینجا باز دعوا میشه که نخیر ما سودائری هستیم باید اینو باشیم این, باشی. این دعوا بسیار جدیه حتی روزنامه شرق لندن هم اینو بحث و نوشت که الان این دو مرگ مگه بالینی شده توی روایت هم این اشاره هستش که میگه سه بار خبر مریورو بده چرا حظات سه بار چه بسا اینطور باشه که واقعا چی یعنی سه بار هی, ر... هی رد میشه هی تایید میشه هی رد میشه که تا الان هم چند بار همینجوری زک شده بله تا الانم چند بار همینجوری بله نقل شده که مرد دیدیم دیدیمشه شبکه الاخباری عربستانم گفتش که به سفر استهلاجی رفته یعنی رفته برای معالجه استهلاجی رفته در دارالبیزا مغربه کشور مغرب رفته در اونجا خیلی عجیبه چرا مغرب خودش جالبه یعنی کشوری که هیچ ذهنیتی در این زمینه در امروزش وجود نداره یعنی کار اینا رسانهی دارن کار